و در دوره های اخیر این بیشتر مورد توجه قرار می‌گیره که هم ترتیب آیه ها در سوره ها مال پیغمبره و هم در ترتیب سوره ها کنن در قرآن این هم اونه نظریه ای این از قدیم هست یعنی شیخ مفید سید مرتزا ابن شهراشوب از اون طرف باقلانی قاضی عبدالجبار در یکی از قولهاش این معتقدن که قرآن از اول همینجوری آرام آرام جمع می شده و ترتیب می آفته و آخرین ترتیب را به همه خودش انجام هم داده جبرائیل هم دوسته بار آخرین سال در پیخنبر قرار کرده ترتیبه و جمعه اینجای خودش اما اون بحثاش طولانی با عدلش ما همین را معتقه یک بار ما در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران تاریخ قرآن درست دیم. و همون بار هم یه متنی نوشتیم. ما خودمون رو تدریس میکردیم یه سرکار علیه ای اون به قول استاد مشهدی ما خدا رحمتش کنه بگو بزنگاه این بزنگاه بخص اینجاست وقتی اشکال میکردیم بگو این کردیم این بزنگاه رو پیدا کنه اونجا رو این اونجا. بزنگاه بخص این یک سرکار کانومی که حافظ قرآن هم بود و بعد از آن که دوره تمام شد رساناش هم نوشتند بعد فهمیدیم که عیال یکی از دوستای خودمون واسه این پول زمان نمیگفته ما بهش نمی گفتیم که نگفته که وقتی سوره باید ما میدادید، با اسپانیا می کنه اون دستا بره. برای جناق آویولان دست. آقایون، آقایون، آقایون خیلی عصبانی، اصلا حمله اسپانیا خطرناکه. بل بعد بالاخره ایشون گفت که شما نظریتون یه مشکل داره. و به خاطر این مشکل یکی از سه تا نکتره باید بگذارید شما اگر معتقد باشید جمع قرآن ماله پیغمبره حتی ترتیبش یعنی عملش حمله و بعد مغره و بعد آلمان الاخر چرا علی علیه السلام قرآنش را بر خلاف سیره عملی پیغمبر ترتیب داد تو شما میگید سنت عملی پیغمبر بر این بوده که ولی از اون طرف میگید که نصحف علی بر اساس نزول بوده شما از سه تا یک از ستا رو باید بپذیرید. یا مثل علما بپذیرید که ترتیب ما پیغمبر نبوده. یا بپذیرید که ترتیب ما پیغمبر بوده، مصطفی علی ام‌الرسول هرچند توضیحی معقولی داره. یه توضیح معقولی بیارید، یه دلیل بیارید که با این حال علی علی السلام از این سنت فعلی تخطی کر کرد و این کار کرد و علی که مخلص‌ترین و پاک‌ترین و پیروترینه. چرا این کار کردید؟ کار کوچیکی نیست. یا اینکه از این نظرگه که مصحف علی بن نساس رو دست داردنیم این یک کارش میخونیم ما حکر کردیم که بله اشکال قابل کرد. جویه واقع و اونجا خوب آنها سرده از یه چیزایی بفتیم دیگه ولی از هم کلاس آمدن بیرون این ذهن و بره کرد و به شدت ذهن و بره مشکل کرد تو ماشین ما با اینکه تا قوم حضرت آقای کبیر بود و حضرت آقای قراملیکی آخون، نه قراملیکی غیر آخون جوک میگفتیم و ایدم میخندیدم و وقتی که جوکا خیلی خطرناک بشد یا آقای قراملیکی میگو الله شد ولی اون روز من اصلا هیچ حرف ندارم هنوزم آقای کبیر میگو یک روز پاکت مستاد تا قوم حرف نزد همین زهرم اصلا به شدت نشخور شد آمدم و باقا نتونستم از اشیرها بشم اولین کاری که کردم روایات خودمون رو جمع کردم خدا رحمت کنه محبوم مجلسی را 70% کار اساسی را انجام بده روایات خودمون که دلالت می کند جمع قرآن این رو جمع کردم خیلی هم هستی که زیاده یعنی نقومن من از پنجاه و قردهی نص ما داریم درباره جمع قرآن نص تاریخی و روایی میگم آن نه فقط روایت، روایات که روایت معصول و اهل سنت هم خیلی دارند. اهل سنت شاید بیشتر از ما دارن، و یکی از مهمترین جاهایی که جمع قرآن روایاتش و منقولاتش جمع شده مصنف عبدالرزاقه. اینا هر دوتای این مسنف ها بسیار مطلب دارند. یعنی هم مسنف عبدالرزاق هم مصنف ابن عبی شیده. شما کالا الحمدلله با امور کمپیتریه با این نسوس کارداری این دوتا را ازش قاپه نواشید. مخصوصا محسوسا مسنف عبدالرزام اینقدر مطلب برای شیعه و بر فضائل بیت چون میدونید بعضن رمی بر تشاییانش میکنند. مثلا آیه شیخ عقبزر رحمت الله علیه که جوز شیعه آورده و آثارشون هم آورده و تفسیر قرآنش که او زمان روم بوده چقدر تحصف میکره که ای کاش این تفسیر پیدا بود البته تفسیر پیدا شده، چاپ شده، سب... سیاه شیهنه داره تفسیرش این تفسیر عدلی عادی نسبت به زمانش هم حالا شاید بید. اونجا در یک جایی جمع کرده عبدالرزاق حالا یه لکاتی داره دیگه، من وقت داره دیدم، یک چیزایی هم رسیدم، اونایی که حاشرش هست بمانند وقتی که این اسناد را به تصمیل تاریخی چیدم دیدم که قلیمی ترین کسی که گفته مصحف علی ابنی طالب بر اساس نزول ابن سیرین هم و ليس قبل ابن سیرین این اولین آدمه که گفته در اهل سنت البته در شیعه ما هم نفس از معصوم داریم هم روایت تاریخی بسیار پوهم داریم در منابع احل سندر از معصول نداریم یعنی مثلا از پیغمبر نداریم خود پیغمبر بگه که مثلا این قرآن قرآنی که من دارم اینجوریه یا مثلا یه سقابه از پیغمبر نقل بکنه که مثلا اولهو حبدون آخرهو ناسون مثلا اینجور چیزی از اصحابه و در شیع قدیمی ترین ابو عبورافعه یعنی قبل از عبورافع نگه ما نسی نداریم و بعد از ابو رافق هم البته سه تا روایت داریم یعنی یکی مال امام باقر علیه السلام و دو تاش مال امام صادق علیه السلام درباره مصحف علیه السلام این بزرگوارا اظهار ای نظر کردم و بودن که الان ما انزله الله یا الا ما موزل ما اینا رو وقتی کنار هم چیدیم که این ما انزله الله و ما انزل و و اینام که صراحت نداره که در اساس ال اول و فال اوله. این ما این ظهور رو تحمیل میکنیم و میگیم که این بعدش ال اول و فال اوله. حالا شما ها کمی تصامح بفرمایید در بحثی رو بگیم من حوالاً میدهم بزرگان را بر یک مقاله در شماره 37 و 38 مجله حلوب حدیث که البته عنوانش میراث مکتوب علیه ما میخواستیم که از مشاور خبیث رو در دوره حضور بنویسیم اولین مقالش رو لزبابین امام نوشتیم یعنی مکتوبات ائمه رو و اصحاب ائمه رو بنویسیم اولین مقالش رو نوشتم ما میراث مکتوب علوی اون اولیش هم فقط همین مصحفی که نزدیک 400 ساله است فقط روشن شده که ما شرف یعنی من نباید بشو دارم دیگه ور شد. فقط معمول صلوات. نمیخوام بگم دلیل، ولی من حدود ده تا قرینه اونجا اقامه کردم که این ما انزله الله به معنای الاول و کل نیست. اینا به این معنوس که مصحف علی علیه السلام متن قرآن را دارد و تفسیرا و تحویل ها و توضیح ها و توجیح هم بر اساس وحی الهی دارن یعنی به تعبیری که اون زمان ها خودم ساختم وحی بیانی در کنار وحی قرآنی که آقای عسکری رحمت الله علیه بعد این تعبیر رو کار برد و چون ایشون در مکتوباتش کار برد خیلی باب شد و به اسمشونم از اشکالی هم ندارد خود ایشون به من گفتم من از این مقاله این تعبیری گرفتم خوشم به من و از گرفتم یکی از دلایلش نیسته هیچ سخابه علل اطلاق نه خودش نه کسی در او اون اتعاله کرده که مصحقش اونایی که مصحق دارن مصحقش تفسیر و تأمیل رو برای همه آیات داشته درباره عبدالله ابن مسعود چرا بعضا میگن که عبدالله ابن مسعود مثلا تعمیلاتی هم داشته ما خود ما هم از نظر تاریخی میدیریم دیرید که ما تو ها کمابیش گفتیم ولی علی علیه السلام ازش نقل شده دیگران هم گفتن که فرمودن با همین اطلاق ما من آیتم الا. هر آیهی که برای من نازل شد برای پیغمبر ناظر شد پیغمبر من رو صدا میزد اول برای من قرائت می کرد بعد بر من املا می کرد بعدم تمام مطالب مرتبط به اون آیه را به وحی الهی به من می دو. و منم این دشتن. هم اون مسلمه هم عمول آیشه هر دو تا گویندی که وقتی آیه میآمد، بیان مربوط به آیه و تفسیر مربوط به آیه به وقی الهی وقتی هم برمی آمد هم شیخ توسی نقل کرده هم تبری نقل کرده و دیگه رو نقل کرده خب یه خب قرائمی هم داره حالا اینجا چیز چیز همه شما من به نظرم آمد که این ما الله اینه حالا ببینید شما وقتی به سیر تاریخی مطالعه میکنید خیلی عجیبه این مطلبی که به سیر نسبت دادن اگر خودتون خرف خودی به سیر نبکنید اینجوری نیست یعنی ابن سه همه به سیری برد کرد ابن سیری نیمیه که خط بلن یا برد نمیه ها بلن است دبا که این ابن سیری مصحبش در مدینه است و من کسی را فرستادم که این رو بدیرم و بیاورم و پیدا نشد اگر پیدا میشد لت اسطنا علما جمع اگر چرا چون تفسیر تحمید داشته و یا حالات همه داشتی هم اگر ما اینو پیدا می بیامر کردیم می دارمشون که بستردی دست می بعد میگه چما زعنون اما ما الله حالا این ون زعنونی که کی این آنه الله ما که میگرد برای شامعه بعدی که از ابن سیرین کرده این گفته که پسیری رو که اگر من و او الالله نظر سوگون که که این من این پسیری نیست خب چی هر اینجوری که در منابع ما هم هم کسی که رو به معنای موضوع ترتیبی الاول و کل اول تفسیر کرده شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه و ما دیگه سابنه ای نداریم حتی صدوق ما انزله الله رو به صراحت همون وحی بیانی میگیرند ولی مفید دیگه رحمت الله علیه اینو خب اینا رو گفتم که وقت مهمی گرفت تا دانسته شود که از نظر ما مصطفی علی علیه السلام تفسیر کتاب تفسیر و آکنده از معلومات و از این جهت ابن شهراشون در فهرستش این رو اول این کتاب طلب میکرده چون قرآن باشد نباد که از مکتوبات بیاره جوری ابن سکیه تو تفکیم قرآن تشکیش دو بشه؟ هم رو بنابشه؟ نه برای چی؟ ترkیبی، ترkیبی که این که الان منظره داره بدهن به ترتیبی ترتیب اصل که نه خب بالاخره نفره ظاهرش این باید خب به رسمت این خاطر این که روایاتی چه میگوید قرآن و ابو بعد جمع کرده است خیلی قدیمیه و خیلی زودتر از این نهایت یک نقطه فعل مهم که باز هم برای شما باید قابل پیگری باشد این است که ك... من عرض می شود که همیشه می گفتم تو همون کم هم که این قابل تعمله ولی اخیرا یک رساله رو در یک جایی دیدم یک کسی ارجاع داده بود که او دائقه قطع کرده بود و یه خیلی مهمه و در این قرن علی شیبی و عبدالرزا من همچی جستجو کردم روایات دال بر جمع قرآن در دوره ابو بکر مال هم نیست. گفتم که من دیدم می‌دیره، یکی کسی شد یک ولی اخیرن یه رساله در دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع شده من همه ندیدم مطمئن ولی در پاورقی یکی از کتاب ها دیدم ارجاع داده که بر اساس تطفای خلانکست بر خلان رساله تمام روایات دلالت کننده بر جمع قرآن بعد از پیغمبر به وسیله ابو مکرمان زهریه خب اگه اینگه باشه خیلی تشتراخت میشه از ظهری فقیه، عالم مهم درباری وابسته به حکومت و الى آخره حالا این دیگه تو جمع ورحان جای خودش دیگه قابل وحثه